الحمد لله و والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد برادراي الحمد لله جای بسیار خوشی هست که یک تعداد از برادرهای محترم ما با ابتکار بولای صاحب امام مسجد و قاری صاحبای محترم و خوجه صاحب محترم یه حلقی درسی را آغاز کردن و این الحمدلله دلالت بایی میکنه که یک نوع بیداری در امت اسلامی پایدا شده که با وجودی که دشمنای اسلام از بسیاری وسایل به خاطر گمراه‌سازی جوانان و نوجوانای ما و مردم ما استفاده میکنن لکن الحمدلله ما میبینیم که اکثرا جوان ها آماده میشن که به ایواز مسخ سازی خود در ای برنامه های مبتزل در حلقات درس در قرآن شناسی اسلام شناسی در تو اشتراک بکنن برادران عزیز همیشه دعا بکنیم که پروردگارا وقتی ما یک کاری را آغاز نکنیم یا الهی هی سلام یا الهی برای ما اخلاص نصیب بکو به خاطر ازی که الا عبادک من هم المخلصین همیشه شیطان مداخله میکنه این را باید متوجه باشین مجرد که شما به درس و از خانه که حرکت میکنین یا برنامه درسی اسلامی رو شروع میکنین شیطان اول شیطانک های خرد خرده بر انسان روان میکنه اما مجرد که یک کار اسلامی انسان میکنه یا یک حرکت میکنه که به طرف دینداری هست و شیطان آرام نمیشینه شیطان های قوی تر روان میکنه واسفاسه زیادتر میشن تا اینکه که حلقی درس از بین بره اشتراک انسان از بین بره انسان میگه چی میکنی میری تو هنوز جوان هستی وقت زیاد داری باز کهش سفید شده ببین ای کلش برنامه های شیطانی هست احیانا بعضی از اختلافات ظاهری در بین بزرگا واقع میشه سر بعض مسائل بسیار خرد و کوچک ما خوش ندارم تو مرا خوش نداری نه برادر عزیز این مسجد مسجد ای خانه ای رب العالمین است خداوند به خانه نیاز نداره ولی این عزت داده به خود نسبت داره ذات داده به خود نسبت دونه بناً این مزیت باید انسان با بسیار اخلاص با بسیار تواضع با بسیار شکست همه برنامه‌های شیطانی را باید انسان کمر شیطانه بشکنان خب ما می‌خ که چطور ما می‌تونیم که پیروز شویم و چطور می‌تونیم که بر علیه شیطان مقاومت بکنیم مقاومت کردن در مقابل شیطان <تصفيق> هر کسی مقاومت کرده نمیتونه ببینین اصل موضوع سر قلب میچرخه قلب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که در وجود انسان یک پارچه گوشت است این پارچه گوشت اگر اصلاح شد تمام اعضای بدن اصلاح میشه و اگر فاسد شد، تمام اعضای بدن انسان فاسد میشه. آیت قرآن میگه الا من ات الله بقلب سلیم کی در روز آخرت نجات حاصل میکنه من ات الله کسی که بنز الله به با چی با, با دست سالم نه با چشم مثال، نه شاید یک نفر نابینا باشه نابینا باشه چشماش نبینا لکن قلبش از قلب صد بینا کده روشم تر باشه و آگاه تر باشه و نفش به اسلام از هزارها و ملیونها ما شما فیلم می‌بینیم بعضی از حفاظ قرآن هستن علمای اسلام هستن که خدمتشان به شکل جهانی به کل دنیا میرسند. ولی نابینا هستم شاید دست نداشته باشه، پای نداشته باشم من کسی هست پایش قط است پایش قط است ولی باور بکنین آمد خوفتن پیش من من گفت استاد دیدم خودش که ازم یک پای دریبری میکنم گفت استاد میمان ما هستی رفتم که از اینا خب من دیدم که آمده تا خانه و قضامت کشیدم من باید پیشتی میرفتم من را گرفت که خیستاد ما و خودت میریم میمان ما هستی ولی ازی که امروی خود دارم جای کار دارم میشه برای پین دقیق دیدم در نوبجی دی شاو رفتن در یک منطقی بسیار دوری طرف کارتینا و هم پیشتر اون طرفها و اونجا یک زنی که یتیما داشت و پایه ازو هم قطع بود معلول معیوب بود برای رفت کمک کرد نفتم سبحان الله این انسان با وجود پای نداره، اقا داره اما کسی ازداد عمری آدم اومد که نسبش هاو میرفت تفکر رعیت خود بود ما گفتیم هم ما مسلمان های داریم از این خاطر شاید انسان چشم نداشته باشه شاید انسان کار باشه شاید انسان عزای بدنش قطع باشه لیکن الله جل جلوه مگه ایلا من اطا الله به قلب سلیم قلب اگر فاسد شد باز خرابی زیاد میکنه الا من اطالله به قلب سلیم یعنی الله جل جل نصیب ما و شما قلب سالمه بکنه قلب متوازه قلب بردبار قلب که در پالو یزی که تعلیم داره تریبیه داشته باشه یک روز امروی رئیس پانزه تعلیم تریبی کابل در سند رفتیم او بر محسنین خود نسیت میکرد. یک جملی بسیار خوب گفت. بچه شما محصلین باانزه تعلیم و تربیه هستن. ما در موجه اصرف بودم، گفت که شیطان علم داشت، تعلیم داشت، لکن تربیه نداشت. دیگه مشکل شیطان نداشت. مشکل اساس شیطان مشکل تربیهوی بود. در مقابل حکم الله جلال جلاله به تربیهگی کرد. تکبر از چی پیدا میشه؟ بگه اخلاقی بیتر بگیم انسان با تربیت هیچ وقت انسان با تربیت هیچ وقت تکبر نمیکنه کل ما انسان هستیم یک دندار ما درد بگیره تا به صبح خوف کرده نمیتونیم گوش ما درد کنه تا به صبح چیخ میزنیم بسیار انسان آجز هستیم این عالم. قلب چطور سالم میشه الا من الله به قلب سلیم اینجا بازه سال پرسال میکنه خب وقتی که گفت قلب سالم من با چی فرمول ها باید برای هر چیز فرمولی وجود داره من با چی فرمول میتونم که قلب خود قلب سالم بسازم هر قلب میتونه سلیم باشه آیا قلب اساس است والا هرچی که قلب ما گفت هرچی قلب ما گفت نه قلب منحصر است. ببینید، فکر کنید قلب این یک اتاق است. قلب یک اتاق است. <تصفح> شما ببینید در این اتاقی که تشبیه کنید به قلبتون. این اتاق پایین دانه نل داشته باشه. یک نل دو کنجا اتاق است. یکی دیگه اون طرف اتاق است. یکی دیگه یکی طرفی. در پنجزلی از ای اتاق پنج نل هست و از هر نل کسافت داخل میشه داخل از اتاق آیا میتنین درست باد بگی که اتاق پاک است؟ میتونیم بگوی اگر از پنج نل پاکی و صفایی بیاید این اتاق پاک میشه میشه؟ ی پای نل به قلب چی هست؟ حواس پنجگان هست چشم گوش حس باسره حس سانعه گوش حس لامسه دست که لمس میکنی حس زلقه زبان هست که میچشم حس شامه که بوی میکنه انسان اینال قلب ما پاک است قلب سلیم دارم یا قلب مریض دارم صحت و مرز قلب ما, ما چی قسم میتونم که قلب ما صحیح باسم سلیم بسازم و در قلب سقیم سلیم سقیم صحت من مریض ما چطور میتونم قلب ما سلیم بسازم آه سر مجاری کار کو سر نلهایی که مجرا میگن سر مجراهایی که راهها و نلهایی که به قلب تو میرسن قلب ای پنچیزیا گنده می یا پاک می پاک می سازن. اگر چشم منفی استعمال کردی یک نفر <تصفيق> یک نفر بیست و با هندوها تماس دارن گوشش خاندن ایندی می شنبه چشماش فلم ایندی نمی بینه وقتی که علما میگن اذا تکرر کلام و علی اللسان استقر في القلب وقتی که زیاد گب زدی در بایست کلام سوار از خواندن اندی کرده میره در موتر که سوار شد خاندن میماند تو خواندن شریلی یک وقت فکر نیست فکر نیست تجربه کنین فکر نیست سمت تو دریوری کرده میری چیزایی که در قلب تا در زبارت میره سر خواندن خود خاندن میکنیم مخانه میخواستم خاندن بکنم در قلب چی هست در قلب چی هست وقتی که زیاد تکرار شد چشم گوش زبان لمس کردیم سیدی هندی <تصفح> لمس کردیم بالاخره، این مجره ها محبت اون دوها را در قلب انسان داخل میکنه. وقتی که محبت این دوها در قلب انسان داخل شد محبت این دوها در قلب انسان داخل شد باسخانیش که اشتک شد نامش چی نمانه؟ تکنین وقتی که محبت زو پیدا شد کانش بچه گک شد نام بچه تا چی بنیم؟ آلا قلبش برش فرمان میده قلب برش فرمان میده نام بچه تا عبد الرحمن بنیم نه, نه نه نه نه نه نه درست نیست میخرم نامش عبدرحیم بونه نه نه این نام هست بچه کاکایم داره و بچه مامایم داره و داره یک روز یک کس مراقب گفت یک تو انس نام داره حضرت انس صادق القران و صحابی بود که ده سال در خدمت پیامبر بسنده بود من یک من نامش انس موند دختره که تولد شد نامش بیبی کس خارج دختر شده من میخوام نامش سمایه بدارم شما خفره خب ما که یخچال داشتیم تو که یخچال خریدیم خفه شدیم شما موتر داشتین، ما موتر خریدم شما خفه شدیم در یخچال در موتر در دیگه وسای تو مکتب میریم ما مکتب میریم خفه شدیم در نام اسلامی چرا ایجاره <تصفح> بیبی سمایه را با خود ایجاره کردیم صحابی مبارک ما من پیشنهاد میکنم که نامش را بیبی سمایه با اشهاب مست بانی که نام یک اینا رو چرا ما مثلا نسبت به عبدالرحمن عبدالله نمیخوایم که نام باشه خوشمون نمیاد <تصفح> چرا اصلا حاکمیت حاکمیت قلب است وقتی که مجاری مفسد شد قلب فاسد شد پس وقتی که قلب فاسد شد اینمی علت است که انسان باز باز تشبه میکنه مشابهت میکنه با غیر مسلمان ها و پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگن من تشبه به قومن فهو من هم من یه حدیث شریف وقتی که اولا میخوندم من اجتماعی چیه پس آدم یک نام خارجی بانن برای یک نام ایندی خوشم اومد نام اولاد ما یک لباس ایندی خوشم اومد من لباس پوشیدم مویای یک بچه فلم خوشم اومد مویای خودم مثل از جور کردم یعنی پیش من اول ها همین سوال پیدا می شده که علی چی دارم من خدارم را هم خوش دارم پیغمبرش هم دوست دارم مسلمانم هستم قرانم دوست دارم لکن خیر اسم میگنم یک نامه ایندی لباسم لباس ایندی میای موی این دوها و راواج و اعضات مسلم این سر از که زیاد فکر کردم که یک روز دیدم یکی از علما گفت که برادر عزیز اساس مشابهت محبت است تو خدا برای با کس تشبیه مثل کسی خدا میشه گودا قلبم دوست داری اگه تو قلبم رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست می داشتی یکی خدا زبان است زبان هرکس کسی ادعا میکنه و کل نیت دای حب لیلا هر کس میگه که من لیلا را خوش دارم ملاقات گف سر از که لیلا خوش داره دف سر گفت نیست که از نگاه عملی در روز قیامت الله براد بگه که خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم براد بگه که مرا دوست داشتی؟ بلی دوست داشتی نامه که بچه چیز؟ قطار پیغمبرا هست آدمت دوست داشتی؟ آدم میماندی ابراهیم میماندی اسماعیل میماندی اسحاق میماندی اگه پیغمبرا را دوست داشتی اگه صفات الله را دوست داشتی عبدالرحمن، عبدالله، عبدالسطار، عبدالغفور، عبدالود نو نا دنون نام الله جل جهود پشت هر قرآن شریف نوشته است کلمه روش کلمه عبد الله عبدالله بندی الله عبدالرحمن بندی رحمن نام الله خوشت نامد چرا نامندی؟ خوشش نامند نام پیغمبر چرا نامندی؟ خوشش نامند نام ابو بکر و عمر عثمان و علی و حسین و انس و فاطمه و خدیجه خوشش نامه چی خوشش آمد نامه اون دو پس چرا نامه از این به خاطر از این که قلبش با هم است از این خاطر من تشبهه به قومین کسی که باید قوم مشابهت میکنه بخاطر از این که قلبه اون چی داره دوست داره اگر دوستش نداری چرا قواری مثل از اون میسازی چرا نامه از خوش رو کدام نام خوشت می نام فلانی هم دو آه سایشون اعمال انسان سند است ببینین اگر چشم انسان غلط منفی چشم انسان غلط و منفی استفاده شد گوش انسان غلط استفاده شد بالاخره ایگندگی ها را بردیم بردیم راستان به قلب جای دادیم از این خاطر علما میگه صبح که از خواب هستی بعد از که تسبیحاته باید 100 دفعه بگی لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا الله چرا؟ بخاطر که لا اله الا الله در دا قلب داخل شود. از زبانت برایم با انتقال کنه به کجا؟ به قلب. قرآن بشنو. تا که قرآن شما ببین از مزه لکه مبرایه ها که مبرایه بسیار وقت‌ها سعی کنه چون قرآن شریف زیاد خوانده بسیار وقتها در خانه وقتی که در یوتیوب ساتیریام میکنه از دانش آیات قرآن مبرایه فکرش نیست اما یکی کسی که طفلش 24 ساعت فیلم سایل میکنه خبر نیست که بچه‌کش قرار سر بام خواندن ایندی میکنه شاید او بیچاره خبر نداشت جدی نیست که من قرآن بخونم در وقت بیکاری سخن از قلب میبرایم از این خاطر؟ اگر میخوایی که آخرین کلمه تو در وادی جان کندن لا اله الا الله باشه پس تو روزانه زیاد لا اله الا الله بگو دیگه در وادی جان کندن کس میفهمه که آخرین کلمه ما چیست میگه آخرین کلمه که از زبان کس برایه اگر لا اله الا الله بود او جنتی هست اگر کدام کلمه دیگه برایه باز اون دوزدخی هست و الان من میره چطور کنم رای حلسی چطور هست من میخواهیم که آخرین کلیمه که از زبان من میبرایم لا اله الا الله باشه در واده جان کندن زبان از کار میفته حلق خشک میشه خشک میشه دان انسان واز میمانه چه زده میره نفسه زده میرم روح میبرایم دیمی لازه که آه آه میکنه اینجا قلب است آنچه قلب است براماده میرن اگه در قلبت لا اله الا الله بود سلام میکرن لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله یعنی دکتر قلب قصه کرد گفت که ما بسیار متاسف هستم و بسیار رژر خون هستم به حالت بعضی از مریضایم دکتر چرا رژر خون هستی و چرا تاسف میکنی گو برادر عزیز من وقتی که در ماشینه که پیشم ما است دکتر هستم میبینم که ضربان قلب خلاص است کارش <تصف> <تصف> <تصف> خلاص است برش میگم که برادر عزیز دیگه داکتر سایبا هم دیگه گوشی موشی خودت جمع میکنه که آخرین چیزای قلب از پایین شده میره گلمش جمع میشه دیگه خلا سوانو برمانوشان میتونه منتا میگه ما دمی آخری لحظه میخواییم امین نفر برش که برادر جان بلی میگه برش که بگو برادر لا اله الا الله بگو لا اله الا الله میگه مریض نمیتونم چرا در قلبش لا اله ایلا الله نیست وقتی زخیره نباشه وقتی در جیب پیسه نیست تو رفتی داد پیش دوکان در پیش دوکان استاد شدی کنجا جنس در دو, دو سدری پیت وقتی در جیب یک قران نیست چی باید خالیست پس لجیب مواره تو مره یک دو سدری پیرا کیک بطی مره پیسی ایت مره نقتی ایت تو دواده دو دو جان کندن میگی لا اله ایلا الله بگویم دواده دو که دو جور و سحط من گودی چند افا لا اله ایلا الله گفتی که در قلب تو زخیره شده باشه آخی در کمپیوتر اتاست آخی در کمپیوتر اتاست میخوایی که یک فایل با پالی ها دیده نی بسیاری وقتای آختی که سرچ میکنن وقتی که پالی ده میری اونجا سرک دنبک زده میره میره میره پس هم باید میره نیست چیزه <تصفح> فایل زخیره نکردی چیره میپولی لوده موسیقی برد میگه نیست که که نیست عصر کشش کن کدام نام دیگه پس زواده جان کنده ما میخوایم لا اله الا الله بگویم قدیق قلب و روزانه یک سات مرتبه لا اله الا الله گفته باشیم که بالاخره ای زبان ازا تکرر کلام و علی اللسان استقر القلب قلب جوی ما گفتم بده قلم چای بگیره بکین گفیاک نافس واش میگم بگو لا اله الا الله بگو خان خراب واه کنا واه چی خرابگی بیڑے غرقگی واه چی لا اله الا الله وای نسو وایلی نسته چی نسا, نسا. ز کوشش میکنه که بگویم اما در قلب چیزی نیست که برسو بتن نیست حق گوش میده نیست چرا گفت نفر دیگه هست برش میگم رفتین به قلب سرش میگم روحش گرفته میشه وضعیتش خراب است ما برش میگم لا اله الله برش کلمه خدا مشهد و الله الا اله میگه قرار خوندن شروع کرده. خواندن کده میره رامجانه رامجانه بسیاری کس میگه رامجانه رامجانه کفر است یعنی بسیاری که آدم این اون دوها تو چالاک چالاک چالا هستن پشت قوارگه که من اینش نگرد که تو بویییی لاغریگه که من اینک سیاگه که کس دادیگه کس آنقدر خطرناک است که از طریق خواندن عقیده خودت در زبان تو جاری میکنن رام بطا میگن ما شما وقتی که یک کس برساند میگنه میگه الله میفهمه. صحابه میگفتن که الله و رسوله احلم اون دو میگن که رام جانه رام میفهمه. پس اوخ امی رام میفامه را در داخل خاندان داخل کردن که رام میفهمه و یک نفر سر با روان است میگه رام جانه رام جانه کلمه کفر میگه موت الله اله الا الله میگیم سید؟ پس این دواده جان کندن خود میگه من برش میگم که بگو لا اله الا خانه خراب بگو تلویزیون سیگو قلبت خلاص هست این میگه رامجانه اینه میگه بلاخر به رامجانه مرد بالله. بخدا بسیاری وقتها آدم خنده میگیرم اما خنده نیست اینجا باید هم سر با حالت از رو گریه کنه از دنیا را. با ایمان از دنیا خب دیگه نفرست میگن باور بکنین یه پارو من از دل خود نمیگم شاید بگین ولی ایو ساد خوب مهارت دارد قصه جور میکنن که آدم ایران میمونه ما قصه جور نمیکنیم قصه اگر جور کنیم دروغ میشه از این خاطر میگه کسایی که زیاد فکایی میگن در فکایی زیاد دروغ است و ای در روز قیامت در جمله دروغ بیا حشر میشه کسی دروغی آدم نمی سازد برای ما وقتی که یک دکتر گفتم فقط روایت میکنیم داکتر سمی میگفتا والله و عالم دیگه من خودم ندیدیم من چون خودم که یک کسی جان بکنم ایک روزم از دیدن دیدنم ایتانم وضعیت بسیار خراب میبر گفت دیگه نفر برش می دکتر قلب است گفت دیگه نفر که گفش خراب است که ما آمدیم آسایی که در دسمال کشف کردیم این دیگر دکتر ها سامونا را گفت تا بر آمدن بگیم ما برش رفتم با هم باید همی بیچار آخری لحظاتش هست باید مسلمان ختمت شد برش گفتم بگلو لا اله الا الله گفت ای برمه میگه که که دیگه داشت کللر بالار آتد دالر اتو شده سر فلانی قد دالر است سر فلانیتو کردیم دالر فلانی آه يسدف. با کلدار با دالر و با پوند، و با استرلین و با یانو یهنا جاپانی و با یه یورو و با ای فاوت کرد تمام روز فکرش مغزش دماغش یعنی مجاریش کلیش سر پیسه بود چشمش پیسه میدید گوشهش از پیسه چیز میکرد زبانش پایسه بود لمس پیسه رو میکرد و ایلو لکلی همدت اللومز اللذی جمع مالا و عدده جامع مال هم سر را جمعه میکنه و عدده ایساب کده میره یک بنده لحکی روان دو برکاتی سه برکاتی چار برکات کتر دانشه برکات گفته میره بلاخره محبت مال قلب ازی داخل شده او گفته و جان کندن سر گفته میره خلاص ولی گو برعکس یک آدم مسلمان متدین با تقوی حافظ قرآن حافظ دین که جوان که در جوانی در عبادت الله مشغول است، ریش و بروتش تکمیل نشده، پنج وقت نماز خود قضا کرد. گفت این هم در یکی از حادثات، همین جوان هم گفت یکی از حادثات انسان است مرگ تو نیست که تو بگی مرگ بر مخصوص ریش سفید است. در قبرسان که برای یک قبر جواناست، تری باباگر کا سر ریش سف... سر گریان کردن که <تصفح> نواسیش مرده پیشروش گورش کرده و خودش قرار بچه شام مردن واسه جوان جوان شام مدخش قرار است گفت از نیست که ولی مرگ مخصوص موسفیده هست مرگ مرگ الموتو یعتی بغتتن مرگ ناگهان میه خوب دمون لحظه که خوب بما تا چیستی چند وقت بشه کس فوت کرده بود این میگه پیسه داشتو مال داشتو چید تا سه ما میراست از این تقسیم نمیشه دسته که پیستدار زیاد بود دفته به شمالی به چکر زدن و سالنگ از این پس که میاد که موتر هم ساید شست افتاد هزار دالر موتر قیمت داره و یک موبایلش دو هزار دلار قیمت داره از ازش موبایلش خطا میخورد از زیر پایش تا که دست خدا در راز میکرد که موبایل بگیرد موتر می یک کمک تا میخورد میز میز گفت دادی نیست که ما جوان استم یا سنم خردست یا فرانستم ناگهان مرک میه لیکن میگه وقتی که جوان آمد وقتی که جوان آمد میگه چون در حلقات درس اشراک کرده مفهوم لا اله الا الله رفوامیده لا اله الا الله روزانه صبح پیشین شه و دواده استراحات سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله علیه لعزی گفت آل وقتی که دیدیم که بیچاره خوبیچ آ ده سان سی آ چی زگ شورای دیگه میکنه گفت میگم ما برش میگیم که من از زیکش رفتم که زبان از شورک میخورن میگم ما برش گفتم که بگو لا اله الا الله میگم برش گفتم بگو لا اله الا الله میگوبر ما گفت که دکتر سبسک در وقت جان کندن میگه برام کلمه را یاد داد میگوبر ما گفت که دکتر سبتو نگو چی بگو که لا اله الا الله لا نیست نفی کو تمام مخلوقات نیست هیچ ملائکه قابل عبادت نیست هیچ پیغمبر قابل عبادت نیست هیچ مخلوق قابل عبادت نیست هیچ درخت قابل عبادت نیست هیچ مورقه قابل عبادت نیست هیچ بود قابل عبادت لا اله نیست هیچ کسی معبود بحق الا الله مگر اس الله مگر ودی جون خود برای من شکل درست تلفظ با معنای کلمه یکی است که آدم کلمه را میگه لا اله, لا اله،, لا اله،, لا اله،, لا اله. الا الله الا اله الا معنایش نمیفهمه اما کسی که معنایش میفهمه با معنای کلمه میگه لا اله نافیه میکنه مخلوقا واسه میگه الله بغیر او مستحق عبادت است و او معبود است و به او با سجده کرد رکوع کرد توبه کرد استغفار کرد رجوع کرد ان اعلی ما چطور میتونیم قلب خود قلب سلیم بسازیم الا من ات الله قلب سلیم کی میتونه جوابش بگه چه قسم میتونیم از طریق پنج چی نماز پن... پن... نل... پنج پنج نعل پنج چی پنج مجرا چطور میتونیم قلب خود پاک بسازیم قلب سلیم بسازیم پنج مجرا پنج مرال حواس پنج گانه یعنی حواس پنجگانه خودم مثبت استعمال کنیم حواس پنجگانه رو چی سیمبول کنیم مثبت اگر حواس پنجگانه رو مثبت استعمال کردیم قلب ما خود به خود پاک میشه اگر این پنج حواس گندگی ها رو در قلب ما انتقال بده قلب ما چی میشه سقیم مریض مریض میشه پس ما چطور میتونیم کی میتونه بر ما بوگه چطور میتونیم که چطو قلب خدا قلب سلیم بسازیم دست خدا بالا کنه یک نفر برام کنه میتونه بگه نه قسمه قصد درس نمیشه که من یک سوال میگم یک دو نفر دست خدا بالا میکنه باید یک ده نفر من معلم ناکام هستم معلومه شد درس من غلط بدمه سید درس ندادیم از خاطر من ناکام هستم پس باید مسهر درس از صفر شروع کنیم. دیگه بسم الله الرحمن الرحیم تو دو, دو نفر بین خدا در بین قدر نفر دو نفر یاد من سوال چه تو میتونم که شما میمرين میرید ده خانه یه کسی شما رو پرسام میکنه که از درس امروز چی استفاده کردی میگه درباره قلب صحبت کرد خب سوال اول از پیش سوال میکنه خب در قرآن گفته الا من ات الله قلب سلیم بر ما بچیم مادرت میگه بچیم بر ما بگو ما چطور قلبمون میتونیم سالم بسازم بگیم که ما میتونیم قلب خود سالم بسازیم قلب سالم بسازیم وقتی که پنج دروازه پنج نل که به قلب واردات قلب چیست از طریق پنج مجرا داره این پنج مجرای را پنج راهی ای نل این پنج راه خالص مجره های سخت هست نل سخت است، پنج راه هست که به قلب تغذیه می مواد قضایی می پنج کلکین پنج کلکین چه پنج دروازه اگر ما این پنج دروازه رو چی کنیم مواد مثبت برازی وارداتش از طریق پنج راه مثبت باشن پس ما می تنیم قلب خود سلیم سال بسازیم وقتی که پنج مجره قلب چی باشن کی برای ما میتونه درم. ما متن برمو خدا چی قسم اید این سوالین بسانید. شما اگن سوالتان بالا نکنید من خو استاد ما به وقت ما خود درزیابی میگنینم. میبینم من کامیاب واسم یا ناکام. اگر شاگردایم سوالای ما جواب گفتن درزیابی من کامیاب اگر مگر که جواب گفتن هتان زست کل چون پایین بود معلوم میشه که ما صحیح درس نداریم. اینا فقط گوش کردن نفهمیدن. پس چیمیتونه برم ما بگه جواب از سوالات چطور میتونه قلب خودان یکی از تو میکنن این معلومه چن نیمه یاد داره هر کسی قسمت دست خدا بالا کن این برادر اینم پشت شما بین اینجا بین برم ابو بین اینجا بیا د پلیم ما به خاطر از اینکه شما خودتان دایی شوین جرأت پیدا کنین بسم الله الرحمن الرحیم ما وقتی میدونیم که قلب خود را پاک, را پاک را وقتی که مثلا همین پنج خود را این راه برش که ای های قلب است؟ ای این راه های قلب است؟ یعنی پاک می را کنید مثلا صحیح سواه کنید در این صورت می میشه که قلب ما مزبت باشه یا قلب ما پاک شد به نظر خودت مثلا برای چشم چیز مزبت چیست؟ چیز مزبت چیست؟ مثلا قرآن از این رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سکرم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ و پناه می جویم بالله به الله پس اینجا بگه تفکر کنین در قرآن قرآن وقت میفهمیم که ما زمان جاهلیت بفاهم در زمان جاهلیت مردم پنامه بردن به جنها پنامه بردن به سنگها پنامه بردن به بطها پنامه بردن به حیوانات پنامه بردن به بسیار چیزهای انسان انسانها و مخلوقات آیت قرآن گفت که فستعذ بالله از این خود اول قرآن گفتیم چی می خانیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قلب خدا گفتیم که تعلق تا با خالق تیگو مستحکم گوش ما وقتی که تو این جمعی که خواندن بر گوشت گفته میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اناو که تفلک تولد میشه میگه مولایی سیبا بگو گوشتی چی بده؟ آزان بده اولین مجرا در قلبش یکانه <تصفح> که برش تایپ چالان کده او تفلک خرد دمی روز اول خرابی کرد ازی خاطر میگه اول باید از تاریخ گوشش در قلب ازی چی انتقال بکنن؟ لازن ازی خاطر میگه الله های تشکر شبست دیگه کی بر ما گفتم آها شما بیاین بسم الله الرحمن الرحیم استاد و شما گفتیم که قرد دارای پای مجناس یا پایین نال یا به اسطلاح عام بگیم پایین یا پایین کنکی شما گفتیم که ما چوکات میتونیم قلب خودمون مثبت بسازیم و قلب سلیم، قلب سالم، قلب صحت بسازیم. قلب صحت بسازیم در وقتی که ما امین الها را یا امین مجرا را مثبت قرار بگیریم. البته برای اسباب مثبت پروردگار هم اسباب مثبت بر ما نازل کرده که عبارت قران الاسم و حدیث رسول, رسول الله صلی الله علیه و است وقتی که ما در مجلس قرآن و حدیث اشتراک بکنیم بل. الا بذکر الله تطمئن القلوب باز بیاد الله قلب چی میکنه؟ قلب بیاد الله محبت پیدا میشه دوستی پیدا میشه معمولا روز اول است که شما ودیم نی؟ عموما احساس میکنیم که اکثریت اون مرد دوست داریم ما هم شما را دوست دارم بذکر الله <متحدث> اما که کل ماده یک مجلس رقص ببینیم مثلا درش خندیم چسره ماش خندید شراب میخورند با کده بوتال شراب در کلیت میذنم تو در کلیمه میذنی بالاخره دشمنی و امایید چی بشه محبت <متحدث> <متحدث> الا بذكر الله تطمئن <متحدث> القلوب جزاكم الله خيرا صحیح شده ان شاء الله هم یک نقطه ها که دیگر میگیم که این هم بسیار ماهی است در مساله خب یک سوال دیگه را میگم باز چه... یک نقطه سی میخوام میگم چ تو میتانی شما یکس سوال میگنه یک کس سوال میکنم میگه من چطور میتانم که آخرین سخنهای خود لا اله الا الله بگردم. یعنی yani من چطور میتانم چی کار بکنم که آخرین الفاظ ما چی باشه لا اله الا الله باید چی بکنم کی میتانم بر او برادر شما بینسی بسم الله الرحمن الرحیم سوال بایی تاریخ شد که ما چی قسم در وقت قبز رو ما میخوام که در وقت قبز رو قبز رو از دانم آخرین کلمه چی باشه؟ لا اله الا الله. الا ما, ما چی کنم برای مرحنم بایی ایران ما روزانه اقلن ست مرتبه ولی اکثری از این که هر چقدر که ما تواننده داریم گفته بوتانیم که او را برای قلب خود جا ساخته سخت باشه، مراهیبس کرده باشه. تو که زبان و بکوچه انت قلب کن، کلمی لا اله الا الله. و قلب انت قلب کن. جزاک الله خدا. باز دمی جاس که خازرو میشه؟ وقتی که شد دان خشک میشه. خشک میشه، زبان خشک, خشک میشه. چشم و عیون و کل چیزیم تو مندیش، الان لعنت از قلبش میبره لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا اله الا الله. خوبیشی که زرد بدن دان زبان نداره. ارگاپا که میزنی با استعمال کنی لا وایت دان دنایت ده لا اله الا الله مینن، لا اله الا الله. <laughs> <laughs> اما تو رسلی از این خاطر وقتی که دانت خوش شد دندانایت از کار افتاد لبایت خوش شد ایچ کلمه دیگر رو کلمات مجبور است به انگلیسی میگه وقتی که نفر تبریکی میده میگه مجبور استی دندانایت لبایت کلش استعمال کنی اما دلالله اله الله ای ضرورت نداری که زبان از کلش سرشار از دقیقی دندان ازی خاطر میتونه انسان حتت دد وادی جان کنه اینو گفته میتونه سه سه الله جزاکم الله خیرا اله سر نقطه 30 دو نقطه من جت مسئله زمین سه نقطه بود نقطه اولش قومین سوال اول این سوال دوم سوال سیومی از این سوال آخریست چی میگم مثلا ما چرا غیبت میکنوم ما چرا غیبت خودتو میکنی که تو حسادت دارم. مچره بدبینی دارم. مچرا برای سر یک نفر رشقن میزنم. سکنین، سوال واسنه؟ یک نفرم ببینید من مثلا خاطری نم رشقن فرد از زیر غیبتش کردم. ده پوز توهات بسته کردم. او را بعد گفتم. او را توهین کردم. که تو حسادت کردم. او را تحقیر کردم. چرا علتش چی است؟ علتش چی هست؟ علتی هست برادر عزیز زبان ترجمان است دست ترجمان است متوجه هست؟ تمام اعضای بدن ترجمان کجاست؟ هست؟ ترجمان قلب است. تمام اعضای بدن ترجمان کجاست ؟؟ هست؟ نه اگر قلب کسیف بود زبانت کسیف ترجمانی میکنه. وقتی که یک نفر غیبت میکنه. غیبت میکنه چرا غیبت میکنه وقتی که مغ قلبم تو را بد نبینم وقت غیبت نمیکنم اگه کسی قلبم بدت نبین، ولو که یک بدی باشه میگه چشم عاشق کور است چرا چشم عاشق کور است لیلا سیای بدقواری لاغر که سن قاریش سل میکردی یک چوری فروش اور بود لکن مجنون پوش چیزی تک تک بود بعدی گفتن پاشون رحم که تو کل زندگیت تا سرزی تابو کردی برای لیلا گفت گفته تو از دیگران بهتر نیستی گفت خاموش که تو مجنون نیستی گفت تو مرا با چشم مجنون ببینی چشم مجنون چرا کور شده بود چون در قلب محبت لیلا افتاده بود از این خاطر تمامی بدیهای لیلا برای چی میشد خوب معلوم این بنار چرا ما غیبت میکنیم غیبت یه نیست که غیبت تطورن کردیم هر کسی که غیبت میکنه معلوم میشه که قلب بسیار گنده داره از این خاطر شده اشد دومین زنا از زنا میکدم غیبت است ؟ بدتر است چرا؟ بخاطر که غیبت ترجمان قلب کسیف است متوجه شده؟ وقتی که قلب ما کثیف است از این خاطر ما چی میکنم؟ غیبت میکنم وقتی که قلب من کسی پس من چی می کنم حسادت می کنم دشمنی می کنم بدبینی می کنم از این خاطر ایناله سوال آخر چیست؟ این سوال ها کی می ما جواب بگویه که دست، پای، چشم، زبان ترجمان چیست؟ کی دست بالا می کنن؟ کلو تا انگفت سیند که پیش از. شما باید از خود جای سوال می کنن؟ به از شما یک کسی سوال میکنه بابرت میگه برادر عزیز امی چرا انسان غیبت میکنه تو خودم عزیز رفتی روز جمعه درس کندی غیبت خودت گفتی که غیبت یک یکی میشینه که غیبت میکنه نه؟ زبان, زبان ترجمان قلب است نه اگر قلبت پاک باشه خودت غیبت نمیکنی اگر قلبت کسیب باشه پس کس که غیبت میکنه اصلا مشکلش در کجایش هست در قلبش هست سبحان رب بکره بلذتی همه اصفون و سلامون علی المرسلین و لله رب العالمین پرواردگار جل جلوه برا ما قلب سالم نصیب بکنه قلب نصیب بکنه که الهی قلبی باشه که با یاد و با ذکر و با فکر تو مشغول باشد <تصفيق> اله زبان ما را با لا اله الا الله جاری داشته باش و اله اله إلا, الا الله را با قلب ما انتقال بتیم <تصفيق> الهی ما در روز جمعی مبارک از مولوی صاحبا و قاری صاحبا گرفته و, و استادای محترم و دیگه برادرهای عزیز ما جوانا و جوانان اینجا شراک کردن کلگی الهی پیغمبرت گفته که اگر ام قسم تعداد مردم در یک خانه ای از خانه های خدا جمع اونا را ملائکه اطراف از انا رحمت الله نازل می و قلبایش ها سکون و آرامش الهی پروردگار رحمت بالای منازل بکنی الهی آخرین کلمه که در آخرین لحظات عمر از زبان ما در جان کندن می کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ